حکایت یکی از ملوک با تنی چند در شکارگاهی به زمستان از امارت دور افتادند تا شب در آمد دهقانی دیدند ملک گفت شب آنجا رویم تا زحمت سرما نباشد یکی از وزرا گفت لایق پادشاه نیست به خانه دهقانی التجا کردن همینجا خیم زنیم و آتش کنیم دهقان را خبر شد ماهزری ترتیب کرد و پیش آورد و زمین ببوسید و گفت قدر بلند سلطان نازل نشدی ولی که نخواستند که قدر دهقان بلند گردد سلطان را سخن گفتن او مطبوع آمد شبانگاه به منزل او نقل کردند، بامدادانش خلعت و نعمت فرمود، شنیدندش که قدمی چند در رکاب سلطان همی رفت و میگفت ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم از ارتفاع به مهمان سرای دهقانی، کلاک گوشه دهقان به آفتاب رسید که سایه بر سرش انداخت چون تو سلطانی